خیلی فکر کردم که چه ایده خوبه میتونم پیدا کنم واسه درست کردن پادکست. رفتم بزنم تو راه موفقیت و خوشبختی و اینا ردی نیگه با زندگیم کردم دیدم اون قدم که فکر میکنم موفق نیستم. بعد گفتم برم یه داستان بنویسم نگاه کردم که نویسنده نیستم. افتم شروع کردم گفتم بیام عدس سروش زیر در رم رمبرم یاد انیمیشن درست کنم دیدم با اینکه شاید بتونم دوتا قیافه خوشگل بکشم روی کاغذ ولی استعدادی که میخواد پشتش تا بتونم یه اثر درست کنم ندارم بعد فکر کردم فکر کردم خودم زدم در دیوار یه داستان تو زنم رسید ولی خب کی حال داره داستانا رو بنویسه من که نویسند نیستم گفتم چی کار کنم چی کار نکنم گفتم یه روز همینجوری میکروفون روشن کنم شروع کنم به ثبت ببینم چی میشه همینطوری برم جلو من خودش کار دیگه میدونی؟ وقتی که برنامه ای نداری، هم نداری، همی که کار بکنی بس حالا ببینیم کجا میره. اومدم این پادکست شروع کردم. بیام بشنم اینجا. همینجوری حرف بزنم براتون. خواستید گوش کنید. نخواستید بذارید پس زمن پخش تا شب خوابتون ببرد. هدف خاصی ازش ندارم جز اینکه شاید یکم ای یاد بگیرم جز اینکه بینم بگم که دارم یه کاری میکنم یه کاری کرده باشم البته اینکه کار حساب نمیشه ولی حالا یه نصف کاری انجام دادنش من اسمم محمده الان چند وقت بیکار شدم قبلا قبلنا توی آیتی کار میکردم مهندس شبکه بودم بعد از اونجا آمدم بیرون الان چند ماه بیکارم علفم یکم دنبال کار گشتم یکم دنبال کار نگشتم بیشترش کردم وقتم تلف کردم هی فکر کردم گفتم چی کار کنم چی کار نکنم این کارو بکنم اون کارو بکنم زندگی چه معنی داره آخرش چی کار کنم کتاب خوندم فیلم دیدم رفتم سفر خودم زدم در دیوار تو چیزی یه چیزی درات تو زندگی شد ولی خوب و نتیجه این رسید همینطوری که با خودم فکر کردم یه یکی یا دوستان اومد تو زهرم که با هاش کار میکردم قبلا اونم تو کار درست کردن پادکست بود میخواست این پادکست با هم درست کنیم چند چنده چیزی هم درست کردیم ولی آخرش یه رو نداشتیم یا لزمشو نداشتیم که بدیمش بیران و بدیم مردم گوش کنن همین ها هیدوی سرام میچرخید بعد از اون طرف چه آدم قربزده ای هستم هی می میرفتم میردم خارجش کار میکنن یه چند تا دیدم که بدون داشتن هیچ استعدادی مهارتی فقط با صحبت که هر همون آدما، آدم تونستن خیلی معروف شن و شدن شغل اون آدما. ها اینجا ما و با چیزی فکر نمیکنیم که تو بشینی خونتون و توی میکروفون حرف بزنی اگه سری آدم بیان بهت گوش کنن این میشه شغل میشه ازش پول داره میدونی شاید از بابات الان بپرسی بگی که مثلا نظرت باید شغل چه میگه این چیزه که شغل نشد برای کار درست بیره کن ولی خب میدونی اونجا دیگه فرهنگیان و این فرهنگشونه که مثلا این چیز باب شده ای فکر کردم گفتم خب اینا که راه پیدا کردن دارن پول در میارن از این واسه شاید منم بتونم یه کاری بکنم یه حرکتی بزنم یه پولی درارم. ولی خب میدونیم هنوز نمیدونم که بگیره نگیره بعد وقتی اصلا بگیره بعدش چیکار کنم حالا مالیم یه کاری هم کردیم یه شهرتی هم رسیدیم بعدش چی؟ هیچی به هیچی دیگه میدونی نونی که نداریم بخوریم کسی هم که نمیخواد بیاد از ما حمایت کنه. مثل این همه آدم دیگه این همه آدم با استداد هستان تلف میشه حالا من که هیچه استداده ندارم چی هی فکر کردم ای منفی بودم دیگه نمیدونم یه جایی به این رسیدم که شاید بیام حرف بزنم همینطوری یه چیزی ازش در اومد البته درسته فکر خودم نبود با زمینم کپی کردم از بقیه چون کلن استودی ندارم ولی خب برادم برم این ورم ور نگاه کنم ببینم که چی کار میکنه اگه کاری جواب داد منم بشنم همون کار بکنم آره این شد که نصف شبا استارت میزنم. ساعت دوازه شب. یه چیزایی میگم. یه چیزایی می هم نمیگم. ولی بیشتر چیزا را نمیگم. ولی این چیزا که میگم و به همه میگم. به شما هم میگم. هم چیز که نمیگم و ممکنه به بعضی بگم. ولی اینجا نگم. بهترم هست نگم. شما هم نگید. چون وقت دیگه دیگه اینو گوشه ذهنتون بس و اینا آهنگ گوش کنید تا Speculate what we feel Speculate what we feel Speculate what we feel what we feel mm -hmm. So I'm still lonely felt And I'm glad I had given I could talk this over and so most alone you felt I'm glad I could feel. And that I بود نه من دوستش داشتم بس همین گذاشتم شما هم گوش کنید اگه دوستش نداشتم اینجا نمیذاشتمش سعی میکنم چیزه که دوست دارم و اینجا بگم و برای شما هم بزنم شاید شما هم خوشتون بیاد اگه خوشتون هم که به بزرگی خودتون ببخشید نمیخوام پر بازی دارم بگم به. ولی خب آره دوستم زودتر از من شروع کرد به این کار که میمود میکروفون رو روشن میکرد البته اون مثلا من ضبط نمیکرد اون شروع میکرد یالم حرفای مختلف زدن 20 سوتی دادن چند بار تو زدن بعدم مثلا 120 سو بیس بار میگفت بهترین کاتش رو برمیداشت ایدیت میکرد اون به همون میداد بیرون من حالا سعی کردم این کار نکردم. نکنم من همینجوری بدون فیلتر باز کنم دهنم و هر چیت دهنم در میاد بگم ولی خب اینم باید در نظر گرفت که جایی نیستم که بخوام هر چیز که میخوام بگم بس نمیگم نمیگم دیگه چرا بگم ولی راجبه یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم حالا همین دوستم که این کارو میکنه من پادکستشم خودم گوش دادم واسه شب خواهید نه خیلی خوبه شاید مثلا همین پادکست اسمش گفته شبانه چون شبا آه این میکنه رو میکن و مثل من. یعنی من مثل اون که زدتا از ما این کار کرد من دارم از اون است که میرم آره بعد میگفتش که بعد این مدت انگار شنوانده دارن میشنسند. هر هرچی که داری میگی خودت دیگه خودتو گذاشتی اونجا میام به گوش میدن. من منم منمیده جالبی بود میدونی زیاد به آرمای مختلف نگشتم تو زندگی همه یه قشم بودن شاید بهش پیگید انتلیکت خیلی الان بهش میگن انتلیکت من خودم هم خیلی بهشون میگم انتلیکت انتلیکت که ترکیب داده واجه انوتلیکت که از واجه انتلیکچوال میاد. انتلیکچوال مثل واژه کجوال یه واژه انگلیسیه به من روشن فکر انتلکت چوال ما کردیم انتلکت یعنی چی؟ یعنی رو عدا شده هم میاره هیچ جالیش نیست ولی خب من خودم این چیزای حالی دوست دارم فکر کنم البته این. و کسی انتلکته دیگه هم که باشون میگردم این چیزای حالیشون ولی خب بزن مهمش رو میگم انتلکت به خودم هم میگم انتلکت نباید بگم ولی میگم واقعا داشتم هم دوست به کس بچه ها صحبت میکردم به اونم داشتم همین میگفتم که من نه و اونگاه هم بگم انتلکت ولی دارم میگم دیگه شما هم بگید ما انتلکتیم چیه دیگه دوستی که نکردیم میریم کافه میشینیم قهوه میخوریم حرف می‌زنیم. اگه قهوه تلخ باشه حرف های تلخ میزنیم اگه قهوه شیرین باشه بازم حرف های تلخ می‌زنیم. شما انت بلی فکر نکنم قهوه همونو شیرین کنیم تلخ میخوریم اگه شیرین کردیم انتلک نیستیم انتلکت نیستیم بگم آهاته بعضی انتلکت را دوست ندارم قهوه. تلخ شیرین میخواد. اشکال نه شیرینم خوردید میتونید بخواد تو منگه انتلکت بلی بخورید قهوه زیاد بخورید من اگر الان قهوه نمیخوردم ساعت دوزنی نصف شب نمیتونستم بشیدم اینجا تو میکروفون دوسته ما که نمیشناسم و نیدم با و قهرم نیست اصلا ببینم میشینم گوش کنن یا نکنن چی اصلا یا چی میشه اصلا اصلا زندگی معنیش چیه حرف بزنم صدا موتورم که همیشه میاد اگه اومد شاید هم ایدش کنم بره بیرون اگه نایمد به بزرگ خودتون ببخشید آه ولی دل اصلی شد رکورد کردن این پادکست الان اینه که میکروفونی این که خریدم وقتی که پول داشتم آقا مهندس بودم حیف نشدی که میدونی خیلی الان با گوشیشون دارم پادکست زبط میکنم با کیفیت خیلی زایتر. من گفتم شاید اینو بتونم زبط کنم کیفیت میکروفونم رو برخ بکشن میکنم بعدم پولم رو باشم دور که هیچی به هیچی این خیلی وقت دوست داشتم این کار بکنم آنم دارم یه باشه باش فکر میکنم شاید همین این کار بکنم واسه لازم نیست نه چیزی بنویسی نه چیزی اصلا همینجوری میایی زن انتخالی میکنه اینجا دوست داشتی گوش کن دوست داشتی موش نکن ولی اون وسط هم یه مجال تنفسی واسط میذارم که یه آهنگ مشتی دیگوش کن. چون نمیخوام زیادی کش پیده کنه این قسمت اول همینجا میبندیم امیدوارم بازم بیام میکروفون رو روشن کنم یه چیزایی بگم میسید بشنوید یه حرفایی با هم زده باشیم مامیده حرفای شما رو که من نمیتونم بشنویم مگر این که برید تو وبسایتم سایتم زیر پوستی که این پادکست رو گذاشتم مارم کامنت بذارید سعی کنید کمتر فوش بید. مرسی و شبتون بخیر